بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين و اليه وصحبه اجمعين اما بعد جلسه گذشته بحث معانی معنی یکی از معانی فطرت در اصطلاح بود که گروهی گفتن که اصل فطرت همون مبدأ خلقت انسانه یعنی انسان که فطرت مولی فطرت خلقت شده منظور اینه که انسانه که هست جهنمی است از همان اولی که بوده تا آخری که هست رو کسی که بهشتی بود اونجا تا آخرش هم بهشتی هست ادلهایی بهش استدلال کردند از جمله اثر ابن عباس بود که میگوید ما لم اكن ادري ما فطر السماوات حتى رايت عربيان يختصمان في بئر قال احدهم انا فطرته وقال الاخر وانا فطرته اي شکقتها که معني رو گرفتن و ما گفتیم که معنی لغوی فطرتاً و این نیست و دوم اینکه خیلی از کلمات هستن که در شعر به کار برده شده ولی این مفهومش از, از لغت فراتر مثل بحث کلمه ایمانی که قبلا ما بهش اشاره داشتیم. استدلال دومیشون بحث این بود که ما بدعنا او کما بدائكم تعودون فريقاً حدا وفريقاً حق عليهم الضلاله. کما بدائكم تعودون لب مطلب رد ما این بود برای اینکه اصل عود و اعاده در این آیه که بششاره شده زندگی دوباره هست یعنی بعد از اینکه انسان زیسته هست دوباره باز برمیگردد. اگر قرار بود فطرت همون مبدع باشد از اول تا آخرش استمرار داشته باشد دیگه اعاده و بازگشت معنانه داشت این مطلب هرچند که ما پنج وجه در رد این مسئله و استلال به این آیه داشتیم لیکن لبه مطلبمون در اینجا خلاصه میشه سومین بومین استدالشون بحث موسا و خزر بود و اون بچهی که خزر میاد و اون را میکشه و اما القلام و فکرن ابواه و این آیه که بحثه که اون خزر میاد و اون بچه را میکشه و گفتن که اینا این شخص بچه کافر بوده و چون اصلا نوشته بوده از همون اول که کافر در نتیجه اگر میزیست کافر میشد و کافرم بوده ما رده این ها اینها دادیم لبه متلبمون این بود که دلالت قرآن و دلالت خود حدیث که در تفسیر این آیه وارد شده بر اینه که اون شخص کافر نبوده اون تفل و بچه ابران تکلیف نداشته دو من در نص حدیث اومده لأرحق عباویهی تو غیانم و کف را لعر حقا پدرش اگر میموند اگر میماند پدرش پدر مادرش را در زحمت میانداخت و در کف میانداخت و حتی انکار موسا یا در خود یا اس نوع اس است استدلال خود خضرم بر همین بر همین مبناس میگه و عمل قلنا و تکنا و باهم مؤمنین فخشین ان یرهقههما تغیانن و کفر ان یرهقههما این در آینده بیاد اونها را لغت عربی خیلی واضحه در آینده بیاد و اونها را خسته بکنه و در کف بندازه پس هنوز کافر نشده و هنوز پدر مادرش عذیت نکرده قبل از اینکه مسئله رخ بده در این مطلب رو بسه و چهارمین استدلالشون به این بود تو اللذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن که گفتیم بحث قضا و قدر هست و رفیع اصلا بحث فتره قدر الا بحثش مفاسقه سیاسی قب گفتیم لیکن امروز با حدیث دیگر و استدلال دیگر و رد دیگر استدلالشون استدلال پنجمیشون از مهمترین استدلالاشون حدیث عایشه هست میگن که عایشه رضی الله عنها قرائت میکند که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم دعوت شدن که بر جنازه بچه تیزین از انصار نماز بخوند دعیه رسول الله صلی اللہ علیه و سلم ایلی جنازه تسابی من الانسار یک بچه فوت کرده بود گفتا که برسول الله ترسان بیان نماز نماز بخوند فقول یا رسول الله تو لها هذا. گفتم یا رسول الله بهشت توبا برای این بچه بچه از دو تا مسلمان نرست شده رسفور من عصافیر الجنه پرنده ای از پرندگان بهشتی این بچه نوزاد این بچه ای که انا فوت شده گناه نکرده پاک و پاکیزه نه گناه نه چیزی پدر و مادرش هم مومنه این بچه بهشتیه اصل حدیثم در بخاری و مسلمه اینی شکه در صحتش در اصله باشید رسفور من عصافیر الجنه لم یعمل سو و لم یدرکو پرنده ای از پرندگان بهشتی است نه گناه انجام داده و نه هم رسیده که گناه بکنه نه به گناه رسیده پاک قال رسول الله صلی الله علیه و سلم او غیر ذلک او غیر ذلک یا عائشه آیا غیر از این یا عائشه یعنی این کارا استفهام انکاری یعنی حرف ته عائشه احتباس از کجا معلوم که بهشتیه یعنی چینی میوش بگیره اساسا از کجا معلوم که بهشتیه نگفت که بهشتی است از کجا معلوم که بهشتی است شاید جهنمی باشه شاید آدم نباشه او غیر ذالکی عایشه شاید غیر از این باشه ان الله خلق للجنه اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب اصلاب ابائهم یعنی خدabond خدabond مخلوقات رو خلق کرده بهشتی و مخلوقات خلق کرده جهنمی و اونها هم یعنی این قضیه مشخص شده بود وقتی که در کمران پدرانشون بودن یعنی قبل از اینکه به دنیا بیا مشخص بوده که کی جهنمی هست که بهشتی هست. بچه استدلالشون واضحه برای اینکه انسان اینها اینا لب مطلب از آخر حدیث گرفتن برای اینکه انسان جهنمی و بهشتی مشخصه از وقتی که در کمر پدر مادرش یعنی هنوز به دنیا نیومده هنوز بچه تولید نشده مشخص کی بهشتیه کی جهنمی در نتیجه فطرت مبده انسانه یعنی از همون مبده تا آخر همش یکیه در کمر پدرش نبشه شده کافر تا وقت که از دونیا بره همش هم کافره هرچنکه بیاد نماز بخونه و شهادت هم بگه مهم آخرشه که کافره جوابمو مبرین ها اولا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم در این حدیث حکم جهنمی بودن این بچه رو نمیده اولا حکمش نمیده انکار میکنه بر گفته عایشه که شاید شاید این شخص بهشتی باشه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم خودش حکم نمیده که نه جهنمی نه بهشتی گفت که این پرنده از پرندگان بهشتی گناه نکرده و نرسیده به گناه گفت رسول شاید غیر از این باشه یا شاید غیر از این و اونم به خاطر اینی که اون شخص اون بچه مدح نشه یعنی تعریف نشه یعنی از حالش مثلا خوشایندیش ما نگیم که مثلا حد هر که هر بچه ای از مسلمانی به دنیا اومد خلاص خوشاینده آقابتش به خیره و بهشتی حکم بهش ندیم این یک بحث عدم تعیین بهشتیان و جهنمیان یعنی اگر گفتیگی این بچه بهشتیه یعنی قضاوت کردی بر اینکه این شخص بیگناه هست و این شخص باید در علم خدایی وارد بهش بشه دو بومه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بر آیش رد میدن چه ردی میدن رد بر این که یک مسئله غیبی هست آیش حق ندارد قضاوت بکند گفت که پرنده ای از پرندگان بهشتی اوه غیر دالک یا آیش درسته دارن انکار میکنن چون دارن بر علم غیب میدن از کجا معلوم که این بچه اگر بزرگ میشه جهنمی بود درسته شاید بزرگ میشه جهنمی بود لازمه این که پدر و مادرش مسلمانند این بچه هم باید مسلمان باشه نیست چون ما خیلی ها میبینیم پدران و مادران مسلمانند بچه کافر نوع حل حسان هم بالاتر از این مثال بچهش کافر بود درسته بچهش کافر بود پس پدر و مادر حکمه یعنی مسلمان بودن پدر و مادر دریدی بر مسلمان بودن اون بچه و او نیست به خاطر همینی که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم در دنبال یه حدیث می فرماین خداون برای بهش کسانی را خلقت کرده و برای جهنم هم کسانی خلقت کرده یعنی از کجا معلوم که این بچه از جمله کسانی که برای جهنم خلقت کرده شده نباشند نه اینکه از اول تا آخر نوشته شده که اون بچه جهنمیه سه بومد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که انکار میکنن انکار بر شهادت و گواه عائشه است عائشه داره گواه میده شهادت میده بعد این این شخص حتما بهشتیه وقتی که یک شخص شهادت و گواه دادیم که بهشتیه مثل اینکه یک مسلمان معینی مثلا بشه یک از شماها بگم تو بهشتی هستی یا شما بهشت هستی فرق نداره حالا چه بچه باشه چه بزرگ باشه این شخص بزرگ باشه بچه اپ تو دیگه دوست بس خب احادیث دیگه آخری مطلب پنجومی،, پنجومی رد انشالله در زمین انشالله به ششره خواهیم داشت در اینجا این فرزند تابع پدر و مادره درست این فرزند تابع پدر و مادره چرا عائشه اومد حکم مسلمانی داد به این بچه چون پدر و مادرش مومنن درسته آیا عایشه میتونه به پدر و مادرش حکم بهشتی بدهد؟ میتونه؟ نمیتونه حکم بهشتی بده. حکم بهشتی به بده. وقتی که به پدر و مادر نمیتونه بده، چطور به فرزند میده؟ درسته؟ پس انکار رسوبه سالغا مواسه که هم که به پدر و مادر نمیشه حکم داد، به فرزند هم نمیشه حکم داد. چون فرزند تا پدر و مادره alla har chun ke insaan har dadzat-e khud mustaqil hai ke be khodare ham in hai ke ra Imam Bukhari dar sahih-esh babe dare bab la yuqalu li fulanan shahid illa istesna mikun hala bab fulani ke be fulan kas shahid gofte nemishe magar kasani ke Allah va Rasool hukm-e shahadat o junadat bal e amaron khattab ثابت بشه احول که بر تو یک صددی قصد و دو تا شهید همون همونحتمال و نکانان می خود ب مشاادد روشون داده از غیب خبر داده. ولی ما نمیدونیم و بخاری به این استدال میکنن شخصی در جنگ کشته شد نیزه در سینش رفت درد میکشید نیزه رو فرو بر تا خودش رو خلاص میکنه خودش را خلاص کرد اوور نپیچ رسه رو گفتن که این شهیده بهشتی دید. گفت که از کجا میدونید که بهشتی, بشه. بهشتی باش جه نمی. تحجب کرد یار رسول در معرکه نیزه در سینهش کسند که جهنمیه چطور یار رسول الله علیه صلی اللہ وسلم فرمودند بخاطر این که این شخص خودشو خلاص کرده و دست خودشه صبر نکرد تحمل نکرد خودشو کشت حالا میشه یک شخصی در معرکه دیدیم تیر خورده تو سینهش نبیده نم فلان شده توسط دشمن کشته شده میتونی بهش بینو چهید؟ یا خودشو بمبسره که کمرش منفجر کرده میتونیم بهش بگیم شهید نمیتونیم بگیم چرا چون از غیب مطلع نیستیم مثل اینکه بر خداوند قضاوت میکنیم که برای این شخص حتما در علم خدایی بهشتی هست نه باید بر خداوند قضاوت بکنیم و بر علم خداوند بکنیم چهار مورد اینکه اعتراض رسول الله صلی الله علیه و بر گفته عایشه به خاطر گفتار عائشه است که میگوید این شخص پرندهی از پرندگان بهشتی است که گناهی انجام نداده و نرسیده به گناه ها رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بهش توصیه میکنن بر این که خداوند بهشتی ها را مشخص کرده و جهنمی ها را مشخص کرده و معلوم نیست که این شخص جز کدام یک این بچه جز کدام یک از این اصناف باشه اعتراض متوجه چی هست؟ متوجه به حکم معین دادن و اونم تخصیص دادن یک شخص معین برای اینکه که بهشتی هست و رسول الله هم پاسخش میده و تحلیل میکنه این قضیه و میبید که نه این چنین نیست اما ختم از بحث که گفتیم پنجومی مطلب بود و اونم این که ما در روایت داریم که در صحیح بخاری داریم که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم میفرماید که من در خواب دیدم که ابراهیم علیه السلام اه... کنار درختی نشستن و دیدن که دوربرش بچه هایی هستن فقال الله جبیر هذا ابراهیم و هؤلاء اولاد المسلمین و اولاد المشرکین دوربر ابراهیم کسانی دیدن بچه دیدن گفتن که این فرزندان مشرکین هستن و فرزندان مومنان <سؤال> او اولاد مشرکین هم همینطوری رسولا فرمودن آرین نعم اولاد مشرکین بله و بچه،, بچه های مشرکین امام ابن کسیر در تفسیر سوره اسرا در تفسیر فرموده فرموده الله جلل شه اماما کن نمعذبین و حتی نبعث رسوله گفتی خیلی زیبا داره در جمع بین این حادیث بله در اینجا اومده که مشرکین هم بچه های مشرکین در بهش هستن لیکن ہر بچے مومن ہر بچے مشرک خیر چرا روایت ابوی علا داری و بزار با سند صحیح و حسن روایت مختلف از انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ بی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن یعطی اربعہ یوم القیامه دا تفسیرا و ما كنا معذبین حتے نبعث رسل و عذاب نمینیم تو ان کہ رسول و پیغمبرانی بفرست یعنی کسانی کہ انسان ها رو نجات بدن 4 نفر روز قیامت میارن بالمولود بچین وزادی که قبل از تکلیف بوده شده بالمولود والمعتوه کسی که تمام عقل و یا دیوانه است والمعتوه و من ماته فی الفتره بکسی که بین فتره ای بین رسول الله صلی الله علیه و السلام ده اون 600 سالی السلام و رسول الله هست و من ماته و شیخ که خرفتش زده و شیخ بس نفر نوزاد کمعقل و بیعقل و کسی که در فترت فوت شده فترت بطه نقطه و و پیرمدی که خرفتش داده. اینها روز قیامت ورده میشن کلهم یتکلم و به حجت هر کدوم دلیل و مدرکش میاره فیقول رب تبارك و تعالی لعون و قیمینا اونجا هست که الله جل شانو دستور میدن که قطعی از آتش برقا بشه قطعی از آتش بر پا بشه ابرزه و یقول که ابراز بشه یعنی اون آتش رو بیارم قطعیه از آتش و یقول لهم اینی كنت ابعثو الى عبادی رسولم من انفوسی هم برای بندگانم پیانبرانی از خودشون میفرستادم در دنیا خدا الان به خودمون محمد مصطفی فرستاده و اینی رسول نفسی دیلیکم و اینجا هم من پیانبر خودم به شما من پیامم خودم ها به شما میرسونم علا مستقیما او دخول هذه این آتشی که میبینید برید وارد بشید این چهار نفر دستور بهشون میده که برن وارد این آتش بشن قال فيقول من كتمن كتب عليه الشقاء يا ربي ان ندخلها و منها كنا نافر نافر اونهایی که شقاوتمندند بدبختن میگه پروردگار چطور ما داخلش بشیم از چیزی که ما رو بسیدوند؟ ما از آتش فراری هستیم دوی بارد آتش بشیم. دستور خدا رو نمیپذیرند با وجود که خداون خودش بهشون میگه من پیامبر خودمم. یعنی من خودم پیام پیامم مستقیمم بهتون میرسولم. اونجا پیامبرام بودم که بهشون میگفتن بهشون جهنم. اینجا من خودم دارم بهتون میگم دستور من را بپذیرید؟ نمیپذیرند؟ کسانی که نمیپذیرند خب جهنمی‌اند قال و من كتب عليه السعاده يمضي فيقتحم فيهم مسرعا کسی که سعادتمند مستقیما میره خودشو میدازه تو اون آتش حالا اون نداره مولود هر مولودی باشه قال فـيقول الله تعالی انتم لرسلي اشد تكليفا و, و به بهنها که وارد نشودن که شما اگر پیامبران می اومدن شما تکذیبشون میکردید و دشمنی با آنها میکردید فای از خدا حول الجنه و حول النار اینهایی که درثن داخلش بهشتی میشن و اونهایی که نرفتن جهنمی میشن پس جنب و توفیق بین این ادله چطوره اینکه این اشخاصی که کنار ابراهیم بودن از اون نوزادان از اولاد مشرکین و اولاد مسلمانان بعد از این امتحانان بعد از این امتحان بعد از اینکه این مرحله عبور کردن بله خیلی از اولاد مشرکی اصلا که لایق بهشتن و خداوند هرچن که در اینجا پدر و مدرشون مثلا کافر مشرک بودن لیکن خداوند اونجا بار باز باری دیگر امتحانش بیکنه اگر خوب از این امتحان بر اومد وارد بهشت خداوند میشه واضحه دیگه این خلاصه جنبندی امام ابن کسیر جنبندیش دقیق و دق خلاصه رد خلاصه رد ختام بحث امروزمون خلاصه بحثمون اینه که اگر معنای فترت بداعت باشد یعنی مبدع انسان مبدع خلقت انسان مبدع روحانی انسان وقتی که خداون شهادت و گواه از انسان گرفته از اصل خلقت از همون وقتی که آدم خلقت شده بویات رسول الله صلی الله علیه و وسلم در این حدیث در اون حدیث همون کل مومن ولود الا یولا الالف فطرات فبواه یحودانه و یمجساله و یونسرانه بویات میگه او یمسلمانه بویات میگه مسلمانشان میکردن چرا رسول الله صلی وسلم نگوکه پدر و مادران پس وقتی که مسلمان یعنی الان به صورت دیگری بگیم به طرز دیگری بگیم بهتره و اونم این که اگر مقصد به بود اگر مقصد به بود تنصیر و تسلیم و اسلام, اسلام مسلمان کردن با هم فرقی نداشت یعنی لازمه یه فبابا ها و بدانی و اسلام و مجسانه می شدن بگیم و او ی مسلمانه در صورتی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم نگفتن که مسلمانش میکنن یعنی اگر قرار بود که این تنسیل بر اصل خلقت بود اصل بداعت بود که هر کسی نصرانی هست، هر کسی مسلمان هست میشود پس باید بین اینها یعنی بین اینها هیچ فرقی نبود و مثل هم بودن و رسول الله صلی الله علیه و وسلم وقتی که مثال میزنه کالبهیمه الجمعاء هل تتحسون في هم جد کم تتج بهمة بهمة و بهمة جمع توتحسون في هم جدات. و خلاص الله سر چ این مثال میزنند. نوزادی که به دنیا میاد آیا می بینید تو اون نووزاد چشم مشکور باشه یا گوشاش بریده باشه؟ نه چینی نیست ما این چین نمی بینیم. در این حیث رد برای اون هاست. اون میگن که انسان ثابت از همون اول ت آخر. هر کسی که اونجا جهنمی بوده تا آخر جهنمیه خب اگر قرار باشه که استمرار باشه از همون اصل خلقت تا آخر پس پدر و مادر نمیتونن پس پدر و مادر نمیتونن که چی پس پدر و مادر نمیتونه که تغییری بدن اینجا تغییر حاصل شده اینجا تغییر حاصل شده اگر اصل مبدا باشه که همش یکی باشه هر کسی جهنمی جهنمیه هر کسی بهشتی بهشتیه پس دیگه تغییر بیمعناست در این حدیث همونطور که در اینجا رسوله صلی اللہ علیه وسلم بیان فرمودن بعد دو من این که وقتی که رسول صلی اللہ علیه وسلم به یک حیوان سالمی مثال میزنم همانطور که حیوان سالمی حیوان سالمی به دنیا می آورد دلیل بر اینه که فطرتی که در انسان هست سالم و کامله انسانی که به تولد میشه سالم و کامله در صورتی که اگر بگیریم که فطرت به اصل مبدعه که جهنمی و بهشتی هست ناقص یا کامل مال بعضی ها کامل مال بعضی ها ناقص درسته در صورتی که در اینجا ما داریم که چی فطرت کامله و مثلام چی میذارن کما تن تو جلبهیما بهیما تن جمعا همونطور که حیوانات سالم فرزندی سالمه دنیا یعنی انسانی که به دنیا میاد سالمه ولی در نظر ها اون که جهنمی از همون اول نو بوده از تشبیه رسول صلی اللہ علیه و سلیم میشه اشتباه انسان از هم اول ناقص و از همون اول اشتباه بوده بله سه اگر اون بچهی که به دنیا میاد قرار بود که از همون ابتدا شقاوتمندیش و سعادت سعادتمندیش مشخص شده باشه باید این مسئله این تغییر وقتی میشد که هنوز روح در اون جنین دمیده, دمیده نشده هنوز روح دمیده نشده چرا رسول الله صلی اللہ علیہ می فرما تو جل بهیمه بهیمه تا جمعه حل تو حسونه فی همه آیا می, می بینید در اونها گوش بریده باشه دماغ بریده و چش بریده باشه درسته؟ بریدن برش چش کندن چش و بریدن گوش چه موقع حاصل میشه؟ بعد از به دنیا آمدن درسته؟ بعد از اینکه به دنیا اومد،, اومد اون شخص این چینین کار روش این چینین تغییر روش حاصل میشه؟ پس اگر حرفیشون درست بود بر اینکه این تغییر از اصل مبدع بوده باید قبل از ولادت می شود نه بعد از ولادت اینجا تغییر بعد از مسالی که رسول صلی اللہ علیه وسلم می زنه مسال این تغییر بعد از ولادته نه قبل از ولادت مسال چنینه دو تا حیوان سالم حیوانی بدنیا دنیا آنند که اون حیوان بعد گوشاش بروده میشه چشمش کشماش میشه. پس مسال رسول صلی خیلی واضح بر اینکه این تغییر بعداً حاصل میشه اگر حرفشون درست بود باید قبل از اینکه در همون 4 ماهگی باید همون موقع قبل از اینکه روح نمیده بشه انسان بشه انسانی که حالا در اون جنین ساخت ساخته میشه باید در همون همونجاها در همون شکم مادر باید بواشاش بریده میشد و چشماش بریده میشد اگر قرار بود که از همون اول مشخص بود مثلا باید چینی میزدند رسول الله صلی الله علیه و سلام بله این خلاصه بحث رد ما کسانی که گفتن انسان از اصل مبدعش آخرش science, و آخرش یک سال تغییری نمیکنه و فطرت معنای بداعت خلق انسانه این خلاصه اقرد و فکر نکنم بیشتر از این نیاز داشته باشه که این مبحث رو باز بکنیم مبحث بعدیمون قول سبومی هست از اقوال مخالفین آخرین قول قول مخالفین از قول نه که مخالفین بگیم بلا توجیه بعد از علماء بل این فطرت انسان فترتی هست که بنی آدم در بنی آدم گذاشته از شناخت از شناخت و از, از شناخت ایمان و از شناخت کفر انسان روی معرفت و شناخت خلقت شده و انسان یک تشخیصی داره حالا حتا اینکه یک شباهاتی هست بین این قول قولی اولی که ان شاء الله و تحلیل این حرف خیلی زیاده که ان شاء برای جلسه Ayende haftaya ayende. Darish inshallah to haftaya ayende.